خب بسم الله الرحمن الرحيم باب أصول الفرائز وعولها أصول فرائز وعول الآن وأصول ما فيه فرزه صبعة أربعة منها لا تعول وثلاثة منها تعول أصول المسائل كشد... كدرشن صاحب فرز وجود داريه 7 هستن 4 تا درشون اول نیست ولی درس تا اول هست خب این اولا این نقطه رو دقت کن ما مثلا مسئله داریم که درش اصلا صاحب فرض وجود نداره و مسئله داریم که درش یک صاحب فرض وجود داره و مسئله که بیش از یک صاحب فرض درش اگر در مسئله صاحب فرض وجود نداشت مثلا شخصی فوت کرده بود یک پسر داشت و یک دختر اینجا دیگه صاحب فرزی وجود. درست در اصل <سؤال> دختر صاحب فرض ولی الان دیگه برادر اومده اونو اصبه کرده. الان دیگه صاحب فرض؟ نیست. اینجا ما اصل مسئله رو از چند میگیریم لذذ مثل رو حض مرد و دو نفر حساب میکنیم زن و یکی اصل تو همین مسئله که گفتم عسه میشه. یک برادر و دو خواهر چی یک خواهر برادر و دوتا می گیریم خواهر و یکی با هم شدن چندتا؟ اصل مسئله ما اینجا میشه از یعنی ما مال خودمون رو سه جا میکنیم دو جاش رو میدیم به پسر یک جاشو به دختر ولی این مسئلهی بود که درش صاحب فرض وجود نداشت ولی اگر در یک مسئلهی صاحب فرض وجود داشت مثلا شخصی فوت کرد مادر داشت و یک پسر مادر میبره یک شیش صاحب فرضه دیگه اصل, اصل مسله اینجا میشه از شیش از چند؟ شیش چون مخرجه مسئله چنده؟ یک شیشونه دیگه شیشه؟ اصل مسله میشه پس از چند؟ اصل مسله رو میگیریم از شیش مادر یک شیشون میبره میبره یک پنج تا باقی میمونه میبره که اینا رو بسر خوب میگه اون مسائلی که درشون و اصول ما فیه فرزون سبعتون اصول اون مسائلی که درشون فرض وجود داره اون مسائلی که درشون چی وجود داره هفت تا اصل هستند چند تا اربعه منها لا تعول چار تا درشون اول پیش نمیاد و ثلاثه منها تعول و در ستا اول پیش اول من الان توضیح میدم که چیه ولی بریم روش برسیم بهتره احدها یک هفت هفته اصلا اولینشون توزی میده ما اصله من اثنین اون یکی اصل مسله از دوه و هو ما فیه نصفون زمانی اصل مسله از دوه که یک دوم در اون مسله باشه حالا برات میگم و یک و دو زمانی که اصل مسله دو باشه درش اول پیش شخصی مرده یک دختر داره شخصی مرده یک شخصی مرده شوهر داره شوهر داره و پدر شوهر داره و چه؟ شوهر چقدر میبره؟ یک دو فون بله چون سهم شوهر یا یک دو یا یک چارون ولی اینجا چون خود میت فرزند نداره شوهر میبره یک دوم در این مسئله ما ما شوهر سهمش یک دومه پس اصل مسئله رو اصن میگیریم از دو اصل مسئله رو اصن میگریم از دو یکی رو میبره شوهر یک دوم دیگه یکی رو میبره شوهر یکی رو هم میبره پدر یکی رو میبره کی؟ میگه اصل مسئله زمانی از دو هست که در اون مسئله یک دفعه وجود داشته باشه مم. مثل این مثالی که گفتم ولا تعول و در این اول فیش نمیاد چرا اول فیش ببین اول اصلا یعنی چی اول یعنی کمبودی در نصیب ها یعنی زیادی در سهم ها یعنی سهم ها زیادند اونا که سهمی برند زیادند بیشتر از اصل مسئله بیشتر از چنده اصل مسئله خب بعدین چیکار میکنن مجبور میشن نصیب هر یکی رو کم بکنن نصیب هر یکی رو چکار بکنن؟ من اینجا مثال میزنم تا شما مسئله رو متوجه بشی. شخصی فوت کرده شوهر داره خواهر داره مادر داره شوهر خواهر، شوهر میبره یک دوم خواهر میبره یک دوم مال تمام شد مادر میبره یک شیشم اینجا میگن که اول پیش اومد اینجا است که میگن چی پیش اومد مسئله رو ما از شیش میگیریم از چند؟ سون سهم مادر شیشه بالاترین مخرج شیشه و اون دوتا هم در زیرش قرار میگیرن قابل بخش پذیرن به قول ریاضی ها خب از شیشش که بگیریم شوهر چقدر میبره؟ یک دوم میشه سه تا خواهرم یک دوم میبره ستا. سه و سه سه هم میشن شش نه؟ یک دوم اینه سه و این برد نصف اون یک ششم دیگه مونده که یکه. اینجا موقع یک سهما رو حساب بزنیم ما. ستاره و شوهر برد، ستاره و خواهر برد یکی رو مادر با هم میشن هفتا تا. اصل مسئله ما در حالی که از شیشه. میگن مسئله اول شد به شش، به هفت. اصل مسئله از شیشه ولی آل شد به چند؟ ببین زمانی که اصل مسئله ما از دو باشه درش پیش نمیاد دو و ما ما اصله من ثلاثه اونی که اصلش سه باشه چند باشه و هو ما فیه ثلث او ثلثان زمانی اصل مساله اصله هست که درش یک سوم یا دو سوم وجود داشته باشه یک سوم یا دو سوم وجود داشته باشه مثلا شخصی فوت کرده پدر داره و مادر پدر داره و چقدر؟ اینجا مادر میبره یک سوم پدر که اصابه هست پس اصل مسئله ما از چند میشه؟ از سه چون در مسئله ما یک سوم داریم چون در مسئله چه داریم؟ اصل مسئله میشه از سه مادری از یک سوم میبره یک باقی مانده رو میبره که؟ که دو سوم میشند؟ پدر دیگه که عصبه هست پس دو زمانی که اصل مسئله از چند هست از سه چه زمانی اصل مسئله از سه میشه زمانی که درش یک سوم یا دو سوم وجود داشته باشه. چون مخرج مهمه چون چی مهمه مخرج مهمه بله چون مخرج مهمه و ثالث البته من مثال خیلی ساده است. و لا تقول در زمانی که مساله مساله سه باشه درش اول پیش نمیاد و ثالث ما اصله من اربعه زمانی که اصل مساله چار باشه پس اصولی که درشون فرض وجود داره هفته هستن چارتا درشون اول پیش نمیاد ستاد در شولال پیش میاد در این زمانی که اصل مسئله دو بود اول پیش نمی اومد زمانی که سه بود اول پیش نمی اومد زمانی که چهار هم باشه اول پیش چه زمانی اصل مسئله از چاره زمانی که در مسئله یک چهارم وجود داشته باشه ها و هو فيه روبه زمانی که درش ربع وجود داشته باشه یک چهارم او ربع مع نصف یا در مسئله یک چارم و یک دوفم موجود داشته باشه او ربع و سلس الباقی یا در مسئله یک چارم وجود داشته باشه و سلس باقی در این چند حالت ولا تعول اول پیش حالا من یه مثالی میزنم شخصی فوت کرده یک شوهر داره و یک شوهری داره و یک پسر فوت کرده شوهر داره؟ اینجا شوهر سهمش چقدره؟ یک چهارم. پسر که عصبه هست؟ خب اصل مسئله از چند میشه؟ از چار میشه چون شوهر چقدر میبره؟ یک چهارم. پس اصل مسئله هم میشه از جند؟ از چار یکو میدیم چار تقسیم بر چار یک یکو میبره شوهر باقی مانده رو میبره کی؟ پسر باقی مانده رو پسر میبره در این در زمانی که اصل مسله هم چهار بارشه درش اول پیش نمیاد و الرابعو ما اصله من سته چهار چهار من اصل مسله آن که اصل مسله چند باشه شش باشه زمانی که اصل مسله و هو مافیه صدسون او طلطون و دسف و, و زمانیست که در مسله یک شیشون باشه یا یک آ و یک دوام و چقدر؟ اگر در مسئله یک شیشون بود یا یک سوم و یک دوام بود یا چقدر بود؟ یک سوم و یک دوام در این حالت اصل مسئله از 6 میشه از چند میشه؟ شخصی فوت کرده یک پسر داره و مادر خب مادر میبره یک شیش پس اصل مسئله میشه از از شیش باقی مانده رو میبره کی پسر پسر اصل مسئله شد از شیش یا در مسئله دیگه چی وجود داشت؟ یک سوه و یک سوم نصف شخص فوت کرده شوهر داره شخص فوت کرده. شوهر داره مادر داره و پدر شوهر میبره یک دوم مادر میبره یک سوم پدر باقیماننده رو. اینجا ما در مثلله یک دوم داریم و یک سوم اینجا اصل مسئله افل میشه 6 ببین گفته بود چهار اونی که اصل مسئله از 6 باشه و زمانی اصل مسئله از 6 می باشه که یک ششم درش باشه یا یک سوم و یک دوفهم یا یک و خب مادر مسئله شوهر یک می میبره مادر یک سهم اینجا هم اصل مسئله از 6 میشه چون دو رو ضرب در 3 بکنیم میشه 6 این مخرج رو ضرب در این میکنیم ها اینجا بین این دوتا تا وجود داره این بحث طولانیه 3 ضرب در میشه 6 اصل مسئله باز هم از چند شد از 6 شد خب ادامهش و تعولو یک ششم اول میشه یک ششم چی میشه اول میشه درش الى سبعتن به هفت و ثمانیتن هشت و تسعتن نه و عشره و ده اغا یک ششم اول میشه به هفت و هشت و نه مثال هفت شما زدم مثاله ای که شخص فوت کرده شوهر داره خواهر داره و مادر داره شوهر یک دهم میبره خواهر یک دهم میبره مسئله آر شد دیگه مال تموم شد مادر میبره می اینجا مادر میبره راست یک 5 من البته اینو توضیح دادم قبلا تو همین درس برای مادر یک شیشون تاین کرده بودن که اشتباه بود که چی بود؟ ولی اینجا هم اول پیش میارم. مشکلی نداره زیاد نگران نباشیم همین مسئله رو من به شکلی دیگه میارم که مادر یک ببره شوهر بنت مادر زمانی که در مسئله شوهر باشه و دختر و مادر شوهر میبره یک چهارون پنت یک دوم اینجا مادر میبره یک ششام بال اصل مسئله که بش از دوازده این میبره سه دوازه تقسیم بر این میبره 6 دوازه تقسیم بر نه اینجا اول پیش نمیاد خوب. همین مسئله خودمون شوهر خواهر و مادر زمانی که شوهر باشه یک دوم میبره خوهر ماییت یک دوم میبره و مادر چقدر میبره یک سوم میبره در این مسئله مسئله اول میشه از شیش به چند به هفت پس 6 به هفت اول میشه و به هشت و به نهو به چه تاری آل شد یک دوم که برد شوهر یک دوم دیگه رو برد کی آهر. بقیه رو کی برد بقیه رو برد مادر حالا یک مسئله دیگه ای رو مطرح می کنیم مادر خواهر دیگه شوهر کجا رفت؟ بله. به مثال دیگه می زنم که به هشت تا اول بشه. به چند اول بشه؟ شوهر رو داریم اگه خواهر یکی باشه اول میشه به هفت اگه خواهرها 2 تا باشن همین مسئله ولی خوهرها را چند تا حساب میکنیم؟ شوهر خ... دو خواهر چند خواهر و مادر تو این مسئله اول پیش میاد شوهر میبره یک دوم دوتا خواهر میبرند دو سوم چون اگه خوهر یکی بود یک دوم می برد ولی الان که دوتا شدن چند شد؟ ها؟ دو سفوم مادر رو حصف کن ب... مادر رو بعدا مثال میزنن اگر مسئله ما یک شوهر باشه، شوهر و یک خواهر و یک مادر مسئله از 6 اول میشه به چند به هفت. شوهر میبره یک دوم خواهر میبره یک دوم مادر میبره یک سوم. شوهر گیریش میاد از 6 سه خواهر سه مادر هم دو. 3 و سه با هم میشن چند چند؟ فاطشی بله. سه و سه با هم میشن 6 تا 7 و 8. مسئله به 8 تا شد. مسئله به چند اول شد؟ سه و سه با هم 6 به اضافه دو تا رو کی میبره؟ دو تا رو مادر. مسئله به 8 تا شد. به چند اول شد؟ پس زمانی که در مسئله شوهر باشه، خواهر باشه و مادر باشه، خدا رو شکر رو کاغذ آورده وگر نه ذهن خطا حلش کرده بود پس شوهر یک دوم خواهر یک دوم مادر یک سو اصل مسئله ما هم از شیشه اصل مسئله ما از چنده شیشه تقسیم بر دو میشه سه شیشه تقسیم بر دو میشه سه شیشه شیش تقسیم, شیش تقسیم بر دو میشه دو ستار شوهر ستار و دو تا رو مادر با همیشن چند تا تا سهمشون شد چی؟ سهمها شد زیاد نصیبها میشه کم دیگه نصیبا میشه چی؟ مجبوریم مالو به تعداد بیشتری تقسیم کنیم اینو میگن اول یعنی زیادی در سهم و کمی در نصیب کمی در چی؟ حالا یه مثالی دیگه رو کاغذش میاریم تا خطا رخ نده شوهر یک دوم دو تا خوهر دو سیفون اینجا مسئله میشه از شیش چون در مسئله یک دوم داریم و دو سیفون مسئله میشه از چن؟ شیش تقسیم بر دو میشه سه شوهر میبره ستارو شیش تقسیم بر سه میشه دو دو دو تا چار, چار. اینجا آله به هفت شد اینجا آله به چشن شد؟ به هفت شد سه تا شوهر میبره چار تا دو, دو تا خواهر. سه و چار با هم میشند هفت آه؟ پس اینجا مسئله ما آله شد به چند؟ در این مسئله اول شد به هفت در مسئله قبلی که شوهر و خواهر و مادر بودن اول شد به 8 حالا یکی دیگه اضافه میکنیم شوهر و دو تا خواهر و مادر شوهر دو تا خواهر و دیگه کی مادر شوهر میبره یک دوم مادر میبره دو تا خواهر میبرن دو سهم مادر میبره یک ششم مالو شوهر گیرش میاد سه تا دو تا خواهر چهار تا 6 تقسیم بر 6 مادر یک سه و چار باه هم میشنند 7 و سهم مادر با هم میشه چی؟ 8 این هم قالله به 8. این مسئله ای که ما هم آوردیم او به چند شد پس برگردیم این سه تا م... مثالو زدن کافی هستن برای فهمه مسئله پس روی چار اونی که اصلش از 6 باشه اونی که اصلش 6 باشه زمانی که در مسئله یک شم باشه یا یک دوم و یک سوم. یا دوست میکنه مهم اکنون که سبازی باشه. و سی و ده و و ده و ده و ده و ده و ده و ده و ده و ده و ده و ده و ده و ده میشه. ده و ده و ده و ده و ده و ده و ده و ده و ده و به ده و و ده و و و به و و میگه و ده اکثرترین چیزی است که درش آل میشه فرض درشی میشه ثلوثا ها چون تا دو سومش آل میشه چون تا چند، چندومش این جمله یکی میسخت بگذار توضیحش میتونم فردا روز که این اومد بحث رو گوش کشید این جمله براش حل بشه ببین مثله اگر از شیش آل میشد به هفت درش کم آل پیش اومده بود ولی زمانی که از 6 آل میشه به ده به چند از شش به ده. یعنی صاحب فرضا خیلی زیادند. صاحب فرضا که ارض می‌برند چقدرند؟ خیلی زیادند. اینجا شش تا دو سوم اول شد. تا چقدر؟ شش. دو سیفومش شش چنده؟ چهاره. دو سیفومش شش چنده؟ چهاره. یعنی شش چهار عدد اول شد. هفت، هشت، 9 ده. تا دو سوم چی شد؟ اول شد. اگر تا سه آل میشد میگفتن آل به نصف شده به چند شده؟ ولی حالا که به چار عدد اول شده یعنی موقعی که اول به ده بشه چند،, چند عدد میشن؟ از 6 تا ده؟ چار چند تا؟ شیش، هفت، هشت، نوه، ده چار دو سیوم شیشه میگن و هو اکثر ما تعول به الفریزه ثلثها. ها اکثر ترین چیزی که فریزه بهش اول میشه دو صیفوم میشه یعنی فراتر از دو صیفوم دیگه هیچ مسئله اول نمیشه اولا ما این مسئله رو بدونیم شیش اول میشه 8 اول نمیشه دوازده اول میشه و بیست چار آول میشه ستا اول میشن چارتا اول نمیشن دو اول نمیشد 3 اول نمیشد. چهار اول نمی‌شد هشت اول نمیشه، 6 اول میشه تا ده دوازده اول میشه و همچنین 24 اول میشه 24 چی میشه اول میشه پس اینایی که اول میشن چند تا شدن 3 تا 6 و و 24 6 و و کلن اصل مثاله ها همیشه هستن. اینو تو زهن داشته باش خیلی مهم یا اصل مسئله دو یا سه یا چهار، یا 6 یا 8 یا دوازه یا بیست و کن اصل مسئله یا دو یا سه یا چار یا شیش یا 8 یا دوازده، یا بیست بیس از این هفت ها چارت اول نمیشن؟ یعنی دو و سی و سه و هشت اول میشن اول یعنی شیش و دوازده و بیست و چار. شیش و و شیش تا ده اول میشد حالا بخونیم هشت والخامس ما اصل هو تمانیه اون که اصل مسئله از هشت باشه و هو ما فیه ثمن زمانی هشت اصل مسئله که درش صاحب فرض یک هشتم داشته باشیم. و لا تاول و دل این اول پیش دمیاد مثلا شخصی فوت کرده یک زن داره و یک پسر اینجا زنش یک هشتم میبره خب اصل مسئله چون میشه؟ از هشت میشه ولی هشت درش اول پیش نمیاد و <تصفيق> سادسو ما اصله من اثنی عشر شیشمین اصل مسئله اونی که اصل مسئله شیشمین مسئله‌ای که اصل مسئله درش یا ششمین اصل مسئله از دوازده است. و هو ما فيه ربع و سدس او ثلث. زمانی هم اصل مسئله از دوازده قرار میگیره که درش باشه یک چهارم، یک ششم یا یک سوم. یک چارم و یک ششم با هم جمع شدن یا یک چهارم و یک سوم خب اصل مسئله از دوازده میشه البته این روش ساده برای اونایی که تباین و تداخل و توافق و بلد نیستند. یعنی خیلی سادش توضیح داده این کتاب و اگر کسی اونا رو بلد باشه دیگه این چیزها را اصلا نیاز نیست که بلد باشه خود به خود اصل مسئله رو پیدا میکنه پس اونی که اصل مثلهاش دوازده باشه زمانی است که در مثئله یک چهارم وجود داشته باشه و یک ششم یا یک چهارم و یک سوم و الی ثلاثة عشر وخمس عشر و سبعة عشر و اول پیش میاد به سیزده و پانزده و هیفده حالا ما یه مثلی رو میاریم که از دوازده اول بشه به هیفده شخص فوت کرده یک زن داره دو خواهر داره و مادر بزرگ داره زن یک چهارم میبره دو خواهر دو سوم میبرند مادر بزرگ یک ششم پس ما در این مساله یک چهارم یک ششم با هم جمع شدند که اصل مسئله منوشه از دوازده چار و شیش که با هم جمع شدند مخرج ها یا 4 و سه مسئله میشه از دوازده اینجا هم یک چارم داریم هم دو سوم داریم هم یک شد یعنی ما میتونیم اصلا مسئله رو از یک چارم و دو سوم بگیریم ولی اون موقع دیگه آل پیش نمیاد از از دوازده میشه ولی آل پیش نمیاد اور زمانی پیش میاد که میراست براز زیاد باشن بیشتر از اون اصل مسئله سهم هاشون بشه. پس مسئله از دوازه میشه یک چهارم دوازه که مال زنه میشه سه دو سوم دوازه که مال دو خواهر میشه هشت یک ششم دوازه میشه دو خب سه سهم زن. به اضافه هشتای خواهر به اضافه دوتا که با هم جمع بشند میشن سیزده اگر دوازه میشدند سهمها اون موقع اول پیش نیومد چون اصل مسئله ما دوازه بود نه دوازه میبونند ولی الان سهمی که اینا میبره سیزده هست و اصل مسئله از دوازه پس میگن مسئله از دوازه اول شد به سیزده یعنی اگر ما مال و قرار بود دوازده جا کنیم سه سهمشو بزن زن بیدیم هشتاشو به دو خاهر دوتاشو به مادر بزرگ الان سیزده جا کنیم مسلمه که کمتر گیر شد میاد همینه اول آول همینه که ها بیشتر باشه نصیبشون کمتر گیرشون بیاد پس دوازده آول میشه به سیزده به پانزده و به هیفته همین یک مثال کافیست و سابعو ما اصلهو من اربعت و اشرین هفتمین اصل مسئله و آخرین اونی هست که اصل مسئله از بیست و چار باشه و هو مافیه ثمن و سدس او, او ثلثان زمانی اصل مسئله از بیست و چار گرفته میشه که در مسئله یک هشتم وجود داشته باشه و یک شیشم یا یک هشتم و یک سوم یا یک هشتم و دو سوم اینا که با هم در یک مسئله قرار گرفتن اصل مسئله میشه از 24 ماننده اینکه شخصی فوت کند ماننده این که شخصی فوت کند و یک زوجه داشته باشد دو تا دختر داشته باشه و مادر و پدر شخصی فوت کرده یک زوجه داره یک زن داره دو تا دختر داره مادر داره و پدر داره اینجا در مثله زوجه یک هشتم میبره دو تا دختر دو سهوم میبرن مادر یک ششم میبره پدر یک ششم میبره در این مثله ما پس یک هشتم و یک ششم با هم جمع شدن یا یک هشتم و یک و یا یک هشتو دو سیوم. اگر هم یکی از این دو رو به تنهای جمع بشه دیگه مثل از 24 بی چاره بیشتر که هم باشن فرقی نمیکنه دیگه از همون چاره اینجا ما دو سی داریم یک داریم دو تا یک ششم داریم یک دو سی و یک هشتو یک یک هشتم. من از همون 24 چاره هشت سی تو یک مسئله به تنهاي آمدند یا هشت و سی و ششو اومدن فرقی نمیکنه مخرج 8 و اینا بودن یک کششتم یک سوم یا دوم دو یا یک شم مثل از 24 میشه. خب مثله از 24 که بشه زوجه میبره یک هشتم یک هشتم و 24 میشه سه به دست آوردشیم ساده است. 24 تقسیم به 8 میکنه میشه سه. دو تا دختر دو سوم میبرن دوم ۲ 24 میشه 16 چون 24 تقسیم بر 3 ضرره در دو میشه میشه 16 24. مادر سهمش یک 6 و 24 تقسیم بر 6 میشه 4 پدر هم همیش یک 6 ش... بیس... و 24 سهم پدر هم میشه 4 چون 24 تقسیم بر 6 گوشه میشه 4 خب سهمیه زوجه شد 3 مال دو تا دختر شد 16 مال مادر شد 4 مال پدر شد 4 4 و 4 ش... سهمیه پدر و مادر با هم میشن 8 به اضافه شانزه میشن بیست چار به اضافه سه که سهمیه زنه باهم میشن بیست هفت پس اینجا مسئله ما از بیست چار اول شد به بیست و هفت خوب تا اینجا کار تمام شده ولی من یک چیزی رو که اشتباهی زده بودن زمانی بود که ما گفتیم ا اول توضیح میدادم قبل از شروع شدن مسائلی که اول پیش میاد گفتم شوهر و خواهر و مادر بعدش گفتم مادر یک شیشو میبره اونجا مادر یک سوم میبره چون مادر زمانی که میت فرزند نداشته باشه یا خواهر و برادرش از دو به بالاتر نباشن سهم مادر یک سهومه که اونجا اول به 6 به 8 حل می شده شوهر یک دوم می برد خواهر یک دوم مادر یک سوم اصل مسئله می شود از شیش شوهر سه تا خواهر سه تا مادر دو تا با هم می 8 هشتا پس مسئله به هشت دور می شد سه و سه و دو هشت می شن خب اونو اصلاح می کنم اینجا پس یک مروروکی می کنم اصل مسئله ها تا هستن. کل مسائل میراست که درشون صاحب فرض وجود داشته یا مسئله اصل مسئله دو هست، یا سه هست، یا چار هست، یا شیش هست، یا هشت هست، یا دوازده یا بیست و چهار. دو سه چار شیش هشت دوازده بیست و هفت. از اینها چارتا درشون اول پیش نمیاد یعنی دو سه چار هشت دو سه چار هشت در اینا اول پیش نمیاد در 6 و دوازده و بیست و چار خیلی خشنگد با هم دیگه در 6 و دوازده و چار اول پیش میاد شیش اول میشه به هفت هشت نه و ده به هر چارتا اول میشه دوازده اول میشه به سیزده و پانزده و, و فقط به بیست و اول میشه 24 فقط به بیست اول میشه اینا توضیح داد شد خب یک مساله دیگه مسائل قشنگی هستن در ای که اول پیش بیاد دیگه عصب عرصی نمیبره چرا؟ چون زمانی عصب عرص میبره که چیزی باقی بمونه در مسئله اول در مسئله عائله به بهتره بگیم اونیکترش درش آول پیش اومده چیزی اضافه نمیشه. هنوز کم میارند که سهمشون نصیبشون کمتر میشه لذا چیزی برای عصبه باقی ولا یری تو آصابتون منفرید وط عصبه در فریزه عائله ارث نمیبره. ما مثلا گفتیم شخصی فوت کرده شوهر داره یک دوم میبره. خواهر داره. یک دوم میبره مادر داره یک سوم میبره یک دوم شوهر برد، یک دوم خواهر برد مال تموم شد یک سوم دیگه مده بادر، اومدیم هم کل کم کردیم که به اندازه هر سهمی کم بشه تا همه گیرشون بیاد خب اگر عصبه اینجا وجود داشت اگر اینجا عصبه ای وجود داشت مثلا به عنوان مثال عمو. عرض نمی برد پس در مسائلی که اول پیش بیاد عصبه عرض نمی برد ولی این نقطه البته نیاز به توضیح داره هر عصبهی که وجود داشته باشه اول که پیش نمیاد مثلا به عنوان نمونه موقعی که پسر وجود داشته باشه خیلی ها میزنه حصف میکنه خیلی ها رو میزنه حصف میکنه دیگه این مسئله پیش نمیاد احیانا اگر خلاصه در مسئله ای بود و اول بود اونجا پیش ارس نمیبره اول چه هست؟ ان انتظید فروز على سهام الاصل اول اینه که فرضها نصیبها بیشتر از سهام اصل باشند سهام اصل های اینا فرضه هاشون که تعیین شده مثل همین مثال که زدیم یکی یک دو هم برد یکی یک دو هم مال دیگه تمام شد اون یکی که دیگه میبره مجبور از همه کم کنیم تا همه ببرند خب چیزی دیگه باقی پس اول همینه که میراث برا زیادند سهم کمه فرضشون اون به که قرار از میراث ببرند کم میشه تو سهمه هاشون زیاده سهم برای یا فرض برا زیادند فتقسم الفریزه لمنتها اليها او لها خوب تقسیم میشه اون فریزه برال مساله نه بر اصل مساله مثلا شوهر خواهر مادر اینجا اصل مساله از 6 میشه یک دوم یک دوم یک, یک سیفو اصل مساله از 6 میشه ولی ما بیایم یک دوم یک دوم 6 و یک سوم و در بیاریم که نمیشه مجبوریم به جای اینکه از یک یک دوم بدیم شوه. از یک ششم خواهر رو یک دوم بدیم. از یک بیایم مادر و یک سوم بدیم مییم از یک از 8 بگیم از یک معذرت میخوام. به جای اینکه از 6 بیایم شوهر یک دوم بدیم به جای اینکه از 6 بیایم رو یک بدیم به جای اینکه از 6 بیایم مادر یک بدیم از هشت میدیم گیرشون میاد این موقع ولید کمتر میشه چون اگر از شیش بدیم بی خیلی بیشتره تا از هشت ولید از 6 گیرشون نمیاد همین رو میگن اول بایل لید خلال نقص النقص و علالفروز به قدر ها با این کار موقعی که ما مین مثل مذکور یعنی شوهر و خواهر و مادر از شیش می دادیم که یک, یک دوم و شوهر می برد می سه تا یک دوم و خوهر می شود می, شود می برد سه تا تمام می شود. یک مادر می موند. این کار رو نمی کنیم که یکی باقی می مونه بلکه می سهم همه رو کم می کنیم. پس به جای این که و شیش جا کنیم تقصیمش کنیم می کنیمش به همون اندازی که اول شده یعنی 8. آه سه تا خواهر میبره شوهر ستا دو دوتا مادر با هم میشند ما مالو از هشت جا تقسیم میکنیم اینجا ولی کمتر گیرشون میاد اول همینه که یعنی نصیبشون کمتر میشه چون سه ها فرضا بله بس این شد از مسئله اصول فرائز و اول در کل این توضیح ها اضافه کنم یا اول پیش میاد یا نقص یا عدل. اگر اصل مسئله مساوی بود با سهمه هاشون بهش میگن ادر مثلا شخص فوت کرده یک شوهر داره و یک خواهر خوش شوهر یک توبون میبره خواهرم هم یک توبون میبره خلاص اصل مسئله میشه از دو یکی رو این میبره یکی رو اون اینو میگن ادر یعنی اصل مسئله سهم اصل مسئله با فرض ها مساوی شد اول حویلیه که فروز بیشتر هستند از سهم اصل مسئله فروز بیشتر از اصل مسئله هستند لذا اینجا سهم هر یکی زینا کم میشه و بهشون داده میشه به اندازه سهمش میمونه نقص نقص زمانی که اصل مسئله بیشتر باشه از سهم طرف فرضش یک دومه مال کامله دیگه یک دومو میبره باقی میمونه یک دومو میبره یک دومو دیگه باقی میمونه اینو بهش میگن نقص اینو بهش میگن چی؟ که اگر عصبه احیان باشه اونو میبره و اگر نه مثلا رد پیش میاد که خودش خب توضیحاتی رو در بابش داره پس یا مثلا اول پیش میشه یا عدله یعنی برابر و یا نقصه یعنی سهم ها کمتر از اصل مسئله هستند در اول سهم ها یا بهتره بگیم فرائز اونهایی که شریعت تقیید کرده بیشتر از اصل مسئله هستند موفق و مایید باشید امروز آخرین روز درس ما بود یعنی سی رمضان 1442 البته خب بعضی 29 رمضان تو طبق بعضی تقویم ها ما کاری نداریم ما این مصادفه با بیست و دوه, دوه و شمسی پس امروز طبق اونایی که زودتر گرفتن یعنی سه شمبه سی رمضان هست و طبق اون بزرگوارانی که بعدن گرفتند 29 رمضان هست که ما این دوره کتاب الاقناع در فقه امام شافعی رحمت الله رو شروع کردیم نویسندش امام ماوردی هست تا انتهای بحث کتاب فرایز اومدیم کتاب بعدی و هست اگر فرصتی شد دوباره دوره ایمالی این کتاب شروع شد انشاءالله از اینجا شروع میشه اگر نه تا اینجا الله اللهم اتالین من رو مورد قبول خود قرار دهد اقولو قولی هذا واستغفر الله لی ولكم فاستغفروه فا هو الغفور الرحیم